اله شعرهایی که میخونن ها چوبارها یا خانوها شب نشستان و شب تاکی جمی ها اله خانوها با خودشو میخونن یا چوپان داره میخونن میره کس دیگر شعر میخونه گوش میکنن، اینها جائزاً به شرطی که داخل اونها موسیقی نباشه کلمات شرکی نباشه ناشکری خدا نباشه یک نامحرم و اجنوی و تعریف بکنه خانوها در غیر سور خدا تعریف کنه شعرهای خودمانی با خودشو اشکالی نداره. دې له شیا دلیل هست دلیل, دلیل اول این است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در یک سفری داخل استی مسلمی آیاده فرنگودن که شعرای اموی بن سعد تو بخون علی شعر کسی خون اے شعر خون کو هی هی ایک دی بیا ایک دی بیا دیگه سات, سات تا یعنی ساد بیت من خونده نبی کریم وش میکرد سات تا گو بخو بخو بعد فرنگودن که نزوی بودی یاغه وسلمه شه شعرهاش کلی پر محتوا و توحیدی اند ف بنابری اگرش اینجوری یا در سفر بعدی نبی کریم دار تشریف می بردن در اجال سفرهای جهادی در سفر جهادی صحاب اکران دیگر با هم شیر بیخوندن حضرت آبر ابن اقوه که اموی سلامت ابن بود داخل مسیر بازی میگن حضرت عمر بود گفت اللہ بخون در مسیح اللہ سرگر بیشی داری میری خستی میلی اللہ بخون چیزی با هم سرگر بیشی والا شروکه با اواز زیبای داشت که الان داشتم با خودشون الان میخوندم خود شروع که خوندن رو گفت که والله لولا اللهم ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلت علينا واستبت الاغضى لاقينا ان الاول غضبوا علينا واذا ارادوا فتنه ابينا ابينا شعر میخونه نبی من سائق یک زری برود حکا در میآورند در مسیر شعر میخون تا راه گفته آمیرو بون اقوات فرمودن یا الله خدا باری رحم بکنه نبی کری هرگر این جمره بکار می بردن این علامتی این بود این آقا می میره این علامت بود هرگر نبی کری می خدا باری رحم بکنه یعنی این می میره حضرت و ما گفتی یا رسول الله لا الله تعتنا چرا نبزرشتی بیشتر استفاده بکنه چرا این به بکار بردی در خیبر کرسیدن حضرت آمیر شهید شد والا بر داخل زالدهش خورد و شهید شد بس طلعه که برادر زادش بو ناراحت بود آمد پیش نبی کریم دست گرفته و چقدر ناراحتیت گفت يا رسول امون اینجا فوت کردن و میگویم تو تون با خودش ورده این رفته جهنم خودکشی کرده بودن که نه اینجوری نیست اینجوری نیست فهمودن قله عربی باشا مثله او، خیلی کم عربی رو اون بوده یعنی ان خیلی انسان درو بشایستی بوده پس در این اینجوری شیرها رو خوندن ایک اون شیر قبلا گفتن که انجشه خود و نبی که در مسیر گوش میکن پس اگر درست باشن اشکالی ندارن